دیروز در مسجد بازار با هنرهای منبت و معرق آشنا شدم منبت و معرق از صنایع دستی چوبی ایران هستند آنها بسیار زریف و زیبا هستند درست است ولی از منبت و معرق هنر زریفتری هم داریم اسم این هنر چیست؟ هنر خاتمکاری در این هنر، هنرمند ایرانی چوبهای بسیار کوچک و چند چندزلی را به هم میچسباند. مثل معرق؟ نه. در خاتمکاری، مسلسهای بسیار کوچک کنار هم قرار میگیرند و همه سطح کار را میپوشانند. این هنر ظریف در چه جاهایی به کار رود؟ در سندوچه علم ها و چیزهای دیگر ساختمان مجلس ملی ایران پوشیده از خاتمکاری است واقعا این ساختمان باید بزرگ باشد اینطور نیست بله زمندان در سالن این بنا خاتمکاری دیوارها سقف و سایر وسایل زیباست